عصای پیری سوار شو پیرزن پاکشان پیش رفت و به در ماشین پنجه سایید و دستگیره را گرفت تابستان بود دستگیر داغ بود در ماشین باز نشد. صدای پیرزن آرام بود. باز نمیشه. جوان پوزه ی ماشین را دور زده بود تا بنشیند پشت فرمان دست به ستون پنجره ماشین درنگ کرد. عینک قطور را روی قوزه بینی جابجا جا کرد و گردن کشید. باز نمیشه؟ خود خب او دگمه رو فشار بده. انگشت پیرزن نداشت باز صدایش درآمد. باز نمیشه، جوان خیس عرق بود، گونه های پرگوشتش سبزه میزد، موی سرش تنک بود، عصبانی شد، تند پیش آمد، با کچخلقی در را باز کرد و تلخ، اما آرام گفت، در یه ماشینم نمیتونی باز کنی؟ پیرزن هیچ نگفت دامن عبای سیاه را جمع کرد و کند و سنگین سوار شد دو هفته بود که دل پیرزن گاه بهگاه درد می گرفت. درد گاهی تند می شد و نفسش را بند میآورد تو دلم توپ نادری میندازن چیزی نیست مادر لابد غذای سنگین خوردی ماشین که راه افتاد باد از پنجره تو زد و حرم داغ و بیتکان ماشین را جابجا جا کرد پیرزن خیس عرق بود نگاهش افتاد به خال نسرت که رو پیاده رو خمیده دست به دیوار گرفته بود و از رفتن مانده بود تا نفس تازه کند خال نسرت سر تا پا سیاه پوشیده بود ماشین آرام رد شد و خال نسرت را تو درازای کوچه تنگ و خاکی پشت سر گذاشت پیرزن سر برگرداند و از شیشه عقب خال نسرت را دید که مثل یک لکه سیاه تو برق آفتاب نیم روز تو کوچه ی گرمازده خالی دور می شود. پیرزن با خودش و برای خودش حرف زد. ددن اصره چه کیابیایی داشتی. آه تو سینه شکست. مردش که مرد رنگ خانه عوض شد. بوی خانه عوض شد. این ننه تو از زندگی ما چی میخواد؟ بعد از شهلوم مردش بود، تو آشپزخانه بود، ظرف می شست. صدای عروسش بود، خوی اتاق برای شجاره کن بره، تس. صدای خفه پسرش بود، می شنوه زن یواشتر، قص بلند میگم گم بشنفه، کجا برود؟ دختر بزرگش که سر زار رفته بود، سالها پیش، حالا استخانهاش هم خاک شده بود، میرم، یه اتاق اجاره میکنم. دختر کوچکش قربت بود، آن سر دنیا. از دده نصرت که کم نیستم. سه روز بعد از ختم مردش، اتاقش را عوض کردند. ته حیات، کنار مردانی زندگی میکرد. تو اتاق گاو. مردش که مرد، حیات را مزایی کردند. گاو را فروختند و مرقها را سر بریدند. خب وقتی یخچال هست وقتی که شیر پاستوریزه هست تو بقالیام تخم مرغ فت فراوونه؟ حوصله حسله پیر زن سر رفت به حرف آمد چرا ای که منو نمیدی؟ جوان به که سر برگرداند حرف زد میدم مادر میدم یکم حوصله کن لابد بعد عمر طبیعی حرف مادر تلخ بود تسر می فهمید. تحمل کرد آب دهان را گرد داد و نرم گفت حالا تو بیا انگوش بزن ماشین کچ کرد تو خیابان پهلوی جوان پیاده رو را نگاه کرد فکرش این بود که کاروانسرای کاوه را بکوبد و بسازد فکرش این بود که مقابل همه هجرهای تازه ساز تاغنما بزند با آجر سسانتی عرق پیشانی را گرفت گرمای جنوب سای سار میخواد تاغ نما نه پنجراهای ولنگ و واز شیشهی ذهن پیرزن رفت به صحن دلباز شوش دانیال به تاغ نماهای سای گیر نگاه کرد و به سردر زربی حجرهای تاریک و درهای کوتاه و دریچه های تنگ مجاور میشم صدای مردش را شنید صدا سنگین بود اسلام علیک یا دانیال نبی به دورو بر نگاه کرد آفتاب از شیشه در ماشین تو زده بود از تیماج دوشک ماشین انگار که دود برمیخواست بلند نفس کشید به پس گردن بلند پسر نگاه کرد خیس عرق بود آخر نگفتی که که چی مادر نگفتی انگوش برا چی؟ جوان سر برگردند. چشمان تیرش از پشت شیشه های کلوفت اینک درشت و گیرا بود گفتم که مادر گرفتارم باید زامنم بشی زامن آهو غروب تنهایی پیرزن آه کشید و با خودش گفت یا زامن آهو دلش گرفته بود جمعه قبل دلش خواسته بود به مازیار محبت کند دلش خواسته بود نویش را در آغوش بگیرد اما تا آمده بود به کاکل مازیار دست بکشد انگار انگشتش را عقرب زده باشد دستش را پس کشیده بود یه جوری حالیش کن آخه باید بفهمه که نباد دستش با هزار من کوفت عاکله به سر بچم بکشه پیرزن به دستهای خود نگاه کرده بود که سفید بود و تمیز بود و بوی صابون میداد. زامن برای چی؟ چقدر میپرسی مادر؟ توی دفترخانه سردفتر از مرد پیر زن حرف زد. خدا رحمتش کنه. دفتر نویس پیر سر از دفتر برداشت و نگاه کرد. سردفتر انگشت پیر زن را گرفت. از مردای قدیمی بود. انگشت پیرزن را جوهری کرد. از اون مردایی که وقتی رفتن هیچ جاشونو پر نمیکنه، پیرزن پای سند انگوش زد. سهم خانه خیابان سعدی را واگذار کرد. سهم حجره و خانه نو را واگذار کرد. دفتر نویس پیر موجه نمیزد، سیگار لا انگشتانش خاکستر شده بود. سر دفتر نرمه دماغ را خاراند. اینجا مادر، بی اینجا منگوش بزن. انگوش زد. کاروانسرای خیابان کاوه را هم واگوزار کرد. جوان بلند نفس کشید و سیگاری گیراند. به سردفتر سیگار تارف کرد. پیرزن با انگشت جوهری پای میز درمانده ایستاده بود. دفترنویس پیر از جا برخاست. بیا خواهر، بیا با این کاغذ انگشت تو پاک کن. به خانه برگشتند. عروس با ابرو اشاره کرد. جوان با چشم و با لبخند اشاره عروس را پس داد. عروس شکفته شد. پیرزن اشاره ها را دید. خنده عروس را هم دید. اما برو نیاورد. رفت تو اتاق گاو. را گذاشت. برگشت و نشست پای شیر آب تا کهنه های مهنوش را بشوید. بعد از مرگ مردش خال نسرت آمده بود که سرسلامتی بگوید. باش اومدی دده نصرت به بالا برای خال نصرت قلیان چاق کرده بود و بعد دل به حرفش سپرده بود پیری و تنهایی و تنگ دستی خیلی تلخه دده اما جونم راحت شد دیدار خال نصرت را پس داده بود دده اینجا یعنی فیلمسل چشم گردانده بود دور تا دور حیات در اندشت حاج بندری. یه اتاق خالی گیر میاد؟ سی خودت؟ صدای مردش را شنید. سر خلق بود. فرزندی کسی نمیکنه فرزندی. حالا صدای خودش بود. صدای زنده و زنگدار خودش که از گذشته های دور می آمد. اما ای پسر عصای دستمانه، اسای پیری صدای عروس از تو ساختمان آمد درموندم که چطور شماها رو بزرگ کرده یک کنه به چم درست حسابی نمیتونه بشوره پیرزن شنید هیچ نگفت ظهر بود، گرم بود صدای معزن از گل دسته ی مسجد صاحب از زمان آمد کنه ها را نیمه کار گذاشت و برخواست صدای مردش آمد فزیلت نماز به وقت بعد از مرگ مردش صدایش را انگار بهتر میشنید دستها را آب کشید صدای معزن دور شد ایلا الصلاۃ وضوع گرفت و رفت تو اتاق غاف باد صدای معزن را باز آورد ایلا خیر الامان نمازش که تمام شد یک دور تسبیح ذکر گفت و زیلت ذکر بعد از نماز صدای مردش بود سر برگرداند کسی نبود دید که نهارش پای در اتاق است برخاست و لخ لخ کنان رفت آن سر حیات در ساختمان را باز کرد و رفت تو باد خونک کولر به تن عرق کردهش نشست ترسید سرما بخورد چار چارقدر را رو سینه کشید. سفری نهار هنوز پهن بود. عروس با تعجب به پیرزن نگاه کرد و هیچ نگفت. مازیار و مهنوش زیر کولر خوابیده بودند. پیرزن آرام حرف دلش را گفت. میخوام یه اتاق جاره کنم. پسر با دهان نیمه باز به زنش نگاه کرد. بعد سر برگرداند به طرف مادر. عینک را رو قوز دماغ جابجا جا کرد و نرم گفت: « شرا مادر؟ پیرزن هیچ نگفت؟ تنها نگاه کرد. مگه خدای ناکرده از ما خسته شدی؟ جوان دید که پیرزن موژه نمی زند. دید که رونینی چشمان پیرزن انگار قبار خاکستری نشسته است. لابد باز حشه که تو میخوای عروس گفت؟ اونه که برات ماشین خریدیم، پیرزن آشفته شد، سرخ شد، تو چشمان عروس خنده بود، همین که تو گاراجه، صدای پیرزن به زحمت شنیده شد، برا من، عروس گفت، و شبا جامعه که سوار میشی میری سهرا، جوان به زن نگاه کرد، زن حرف را خورد پیر زن آه کشید خندزار بچه ها شده بودم دده خندزار ها. صدای خال نصرت بود جوان حرف زد حالا از چیزی ناراضی هستی مادر؟ مادر هیچ نگفت جوان سیگاری گیراند و آرام گفت زحمت رانندگیتم که گردن من مادر پیرزن پشت کرد و نرم نرمک برگشت تو اتاق گاو بشقا غذا را گذاشت پشت در و لنگه های در اتاق را بست و چفت را انداخت انگاه توپ نادری تو دلا مندازن پتو را پهن کرد رو قالیچه و نشست لبانش جنبید رو به قبل دراز کشید چشمها را بست و لبانش آرام گرفت